حکومت می کرد. امیری که مثل همه عمرای دیگه بارگاهی داشت و سربازانی و غلامانی و پیشکاری و اما پیشکار به خلاف امیر مرد بسیار دانا و دنیا دیده ای بود ولی بله پیشکار دانا همیشه با امیر در یک مورد اختلاف نظر داشت و اون هم این بود که امیر قصه ما دایم از مردم پایین دست جامعه و روستازادگان به عنوان کسانی که از دانش و خرد بهره ای ندارند و از هنر هم نصیبی نبردن یاد میکرد اما پیشکار او همیشه به یاد امیر آورد که هنر و دانش نه بالا دست و پایین دست داره و نه روستازاده و شهری اما خب همیشه از او گفتن بود و از امیر قبول نکردن باری روزگار همینطور میگذشت تا اینکه یه روز مردی وارد شهر شد مرد بر دوش داشت و توی اون خرجینم جستکه نون و کوزه ای آب چیز دیگه ای نبود مرد به هر کس که میرسید نشونی بارگاه امیر رو میپرسید و قبل از هر چیز جواب میشنید که ای مرد اگه کاری داری اول برو پیشکار امیر رو ببین چون تنها اونه که گوشش به حرف ما مردم بدهکاره. اگه مشکلی داری و ای میخوای قبل از هر کس باید سراغ اونو بگیری مرد همه این سفارش ها رو شنید و هنگامی که به بارگاه امیر رسید به نگهبانان گفت به پیشکار امیر بگید که روستازاده تنهایی از راهی دور اومده تا اونو ببینه به اون بگید مردی اومده که فقط به درد بارگاه امیر میخوره با شنیدن این حرف یکی از نگهبانها به نزد پیشکار امیر رفت و خیلی زود برگشت مرد از زور خستگی کنار در بارگاه نشسته بود و به دیوار تکیه داده بود که نگهبان به اون نزدیک شد و گفت بلاشو مرد پیشکار امیر میخواد تو رو ببینه بلند شو و بعد هر دو وارد بارگاه امیر شدند تا به نزد پیشکار برن مرد روستایی از هنگامی که وارد بارگاه امیر شده بود نگرانی و استرابی ناشراخته تمام وجودش رو پر کرده بود اما وقتی که چهره خندان و آروم پیشکار امیر رو دید همه نگرانیهاش از بین رفت و با خیال راحت شروع به گفتن حرفاش کرد جناب پیشکار خانواده‌ی من در رستای دور زندگی میکنه فقر و تنگ دستی امون اونها رو بریده میدونید جناب پیشکار من یه اسب شناسم شاید تو تمام این سرزمین کسی پیدا نشه که که پای عصیل و سالم و تندرو رو مثل من بشناسه. من به اینجا اومدم تا منو به عنوان مسئول پرورش از های امیر انتخاب کنید. مطمئن باشید که خیلی خوب از پس این کار برمیم. پیشکار این رو که شنید رو به مرد کرد و گفت ای مرد من حرف تو قبول دارم. اما با این حال باید اول پیش امیر بریم. چون در نهایت این اونه که باید تصمیم بگیره. البته منم وساطتی می کنم. امیدوارم که امیر راضی بشه و تو رو اینجا نگه داره. پیشکار این رو گفت و همراه مرد به طرف اتاق مخصوص امیر براه افتاد. به نزد امیر که رسیدن پیشکار رو به امیر کرد و گفت ای امیر حکومتتون برقرار و سرتون سلامت. این مرد ادعا میکنه کنه که اسب شناسی ماهره. میگه که هیچ کس مثل او های اصیل اسب رو نمیشناسه. این مرد مایله که مسئول پرورش های شما باشه حالا دیگه خودتون بهتر میدونید که چه تصمیمی براش بگیرید امیر این رو که شنید نگاهی به سراپای مرد روستایی انداخت و بعد با اشارهی پیشکار رو به نزدیک خودش طلبید و آهسته به او گفت میبینم که دوباره مردی روستازاده و پایین دست رو به اینجا آوردی تا کاری رو به او بسپاری مگه بارها به تو نگفتم که نمیشه انتظاری از این مردم داشت مگه نگفتم اونها اندوخته ای از دانش ندارن که به کار ما بیان پیشکار که تا اون وقت سرش رو پایین نگه داشته بود و به حرفهای امیر گوش میداد سرش رو بالا آورد و نگاهش رو با نگاه امیر یکی کرد و گفت ای امیر، شاید واقعا او چیزهایی از ها بدونه که دیگران ندونن باید بهش فرصتی بدیم تا خودش رو نشون بده شاید این مرد به درد دستگاه شما بخوره امیر، این رو که شنید فکری کرد و لبخندی زد و گفت قبول میکنم باشه، اما فقط برای اینکه به تو ثابت کنم که این مردم پایین دست و روستایی به درد این کارها نمیخورن و هیچ انتظاری نمیشه ازشون داشت اصلا همین الان به استبل مخصوص میریم تا ببینیم این مردی که این قدر طرفش رو گرفتی چند مرده حلاجه و بعد از روی تختش بلند شد و همراه پیشکار و مرد روستایی به طرف طویله به راه افتاد اهوانان و خدمتکاران با نگاهشون امیر و پیشکار و مرد روستایی رو دنبال میکردند. و از اینکه امیر با مردی روستایی همراه شده بود و لبخند میزد، متعجب شده بودند. اونها وقتی به طویله اسپا رسیدن ایستادن و امیر بدون اون که به مرد روستایی نگاه کنه به او گفت: توی این طویله هزار تا اسبه که هر کدوم از بقیه چابکتر و تیزروتره. حالا تو که ادعا میکنی ماهرترین اسب شناس این سرزمینی برو و بهترین اونها را انتخاب کن. و بعد در حالی که دوباره لباش به خنده باز شده بود دستاش رو روش کمش قلاب کرد و نگاه معنیداری به پیشکار انداخت. مرد روستایی، تو تبیله اسب‌ها به راه افتاد و شروع کرد به تماشای تک‌تک تک یال تک و گردن بیشتر اسب‌ها رو دست کشید و عضلۀ پاهای اونها رو به دقت بررسی کرد. بعد از مدت زیادی که طول کشید تا اینکه مرد از ورانداز کردن اسب‌ها آسوده شد، او به نزد امیر و پیشکارش برگشت. امیر که از اون همه سر پایی و تحمل بوی ناخوشایندی که همه فضا رو پر کرده بود خسته شده بود تا مرد رو دید با عجله گفت خب بگوینم کدوم اسب رو انتخاب کردی مرد نگاهی به امیر و پیشکارش انداخت و گفت جناب امیر من هر قدر که گشتم نتونستم اسبی رو انتخاب کنم چون توی تمام اینها هیچ اسب اصیلی پیدا نمیشه راستش رو بخواید اینا به گاو و یابوی بارکش بیشتر میبرند تا به اسب. هنوز حرف مرد تموم نشده بود که صدای قه بلند امیر در فضا پیچی امیر در حالی که میخندید دستش رو به شونه پیشکارش زد و گفت دیدی پیشکار دیدی گفتم این مردم پایین دست از ذره علم و دانش بهره ندارند دیدی گفتم حالا فهمیدی چرا اون همه بهت میگفتم که تو از این جور آدما خلوت کن و امیدی هم بهشون نداشته باش پیشکار صبر کرد تا خندیدن امیر تموم بشه و بعد رو به او کرد و گفت ای امیر اگه این مرد میگه که این عصب ها از نژاد اصیلی نیستن حتما باید اسب اصیلی رو هم سراغ داشته باشه مرد رو با شنیدن این حرف قدمی به جلو گذاشت و گفت بله جناب امیر به من فرصتی بدین منو با کسی که بهش اعتماد دارین با مقداری پول روونه کنید تا بگردم و اسپی رو که واقعا تندرو و تیز و چالاکه براتون پیدا کنم از شما خواهش میکنم که این فرصت رو به من بدید مطمئن باشید که با اصیل ترین اسب این سرزمین برمیگردد امیر دوباره نگاهی به پیشکارش انداخت و گفت مثل اینکه هنوز از این ماجرا درس نگرفتی پیشکار اما باشه قبول می کنم. اونقدر دنبال این ماجرا رو میگیرم تا اینکه همه حرفهای من به تو ثابت بشه امیر این رو گفت و بعد از اینکه مرد روستایی در گوشه ای از بارگاه استراحتی کرد همون روز او رو همراه یکی از افرادش روونه کرد. امیر از این کار خودش شاد بود چون بعد از مدت میتونست پیشکارش رو قانع کنه که هنر و دانش تنها در میون مردم بالا دست جامعه پیدا میشه نه در جایی دیگه. مرد روستایی با مرد مورد اعتماد امیر به راه افتادن و تک تک شهرهای اون سرزمین رو گشتن اونها به بیشتر روستاها هم سر زدند تا اینکه مرد روستایی اسبی رو که میخواست پیدا کرد مرد مورد اعتماد امیر تمام پولی رو که همراه داشت به صاحب اسب داد و صاحب اسبم که دهنش از دیدن اون همه سکه باز مونده بود راضی و خوشحال از چنین معامله‌ای اسب رو به داد اونها هم بی معطلی به طرف شهر و بارگاه امیر به راه افتادند مرد روستایی با چشمانی که از خوشحالی برق میزد دایم سراپای اسب رو تماشا می کرد و سر و روی حیوان رو نوازش میکرد القصه چند روزی گذشت تا اینکه اونها به شهر رسیدند وقتی که به بارگاه امیر رسیدن مرد روستایی اسب رو به طویله برد و منتظر موند تا امیر سر برسه و حیوان رو ببینه. چیزی هم نگذش که امیر دوباره همراه پیشکارش از راه رسید و باز همون لبخند معنیدار قبلی روی لبهاش نشست. مرد روستایی تا اونها رو دید جلو رفت و عرض ادبی کرد و با دستش اسب رو که به یکی از تیرک های طویله بسته بود به امیر نشون داد و گفت حکومتتون برقرار باشه جناب امیر من تمام گوشه و کنار این سرزمین رو گشتم تا به اسیلی رو که شایسته شما باشه پیدا کنم و این همون به اسیله امیر جلو رفت و نگاهی سرسری به اسب انداخت و گفت من که فرقی بین این اسب و بقیه اسبا عصبا نمی بینم تازه اندام و ازوله های اسبای خودم که دروشتر و قویتر از این اسبه مرد روسایی قدمی به جلو برداشت و گفت جناب امیر جسارته ولی باید عرض کنم که عذله اسب سواری باید کشیده و خوش باشه و همینطور طور که میبینید این اسب همینطوره اما خب این اسب دست مردی بوده که بیشک، چیز زیادی از اسب و پرورش اون نمیدونسته چون اگه میدونست حتی دو برابر اون پول کلان رو هم که بهش میدادیم بازم راضی نمیشد اسبشو بفروشه بله این اسب باید یه مدت تیمار بشه و خوب ازش نگهداری بشه تا بعد خودشون نشون بده برای همین میخواستم از روی کرمتون یه فرصت دیگه هم به من بدی امیر دستی به سبیلاش کشید و گفت گفتم که من تا آخر این ماجرا هستم و هر قدرم وقت بخواید میدم و بازم با لبخندی معنیدار اونجا رو ترک کرد از اون روز به بعد مرد روسایی هر روز اسب رو تمرین میداد و برای یک لحظه هم از او غافل نمیشد این گذشت تا اینکه بالاخره روز موعود فرا رسید مرد روسایی وقتی که دید اسب خوب آماده و سرحال شده به نزد پیشکار امیر رفت و گفت جناب پیشکار اون اسب اصیل حالا چابکتر و سرحالتر از همیشه است بنابراین هر وقت که خودتون صلاح دونستید امیر رو خبر کنید تا اونو ببینه البته منم باید چیزی رو به امیر بگم پیشکار امیر جواب داد حالا که خودتم میخوای امیر رو ببینی همین الان پیش او میری. او این رو گفت و از جاش بلند شد و همراه مرد روستایی به راه افتاد. امیر تا اونها رو دید که از در سرسرا وارد شدن از جاش بلند شد و بی سبری گفت خب چی شد؟ بگو بدونم چه کار کردی مرد؟ مرد روستایی سلام و عرض ادبی کرد و گفت جناب امیر اسب آماده ی آماده است حالا دیگه سرعتش به باد میمونه و شیحش برد امیر دوباره نگاه تنزالودو به پیشکار کرد و گفت خب پس بریم بریم ببینیم چه کار کردی؟ مرد روستایی گفت خواهشی داشتم یا امیر میخواستم دستور بدید همه سپاهیان و سران لشکرتون با اسبهاشون به میدون بزرگ شهر بیان بعد من اسب رو به اونجا بیارم تا همه اونو ببینه. امیر نگاهی به پیشکار خودش کرد و گفت نظر تو چیه پیشکار؟ پیشکار امیر فکری کرد و گفت به نظر من این کار ایبی نداره. همه جمع میشن و نمایش یه اسب اصیل رو تماشا میکنن. امیر گفت و همچنین نمایش ثابت شدن حرفهای من به تو. باشه همه سران لشکر رو خبر می‌کنه، قبوله و بعد اشاره ای به یکی دو نفر از نگهبانهاش کرد تا برن و سران لشکر رو خبر کنن مرد روستاییم راضی و خشنود برگشت تا اسب رو برای بعد از ظهر آماده کنه جمعیت زیادی از مردم عادی گرفته تا سپاهیان و فرماندهان و مأمورین محافظ امیر در میدون بزرگ شهر جمع شده بودند و چشمشون به راه بود تا ببینن اون اسب عصیلی که اون روزها اون همه ازش صحبت میشد و حتی سر اون بحثهای بین پیشکار و امیر در گرفته بود چه چجور اسبی بود و هنوز وقت زیادی نگذشته بود که مرد روستایی در حالی که دهنه اسب رو در دست داشت به میدون اومد. با دیدن مرد روستایی سکوت جای هم همه جمعیت رو گرفت و همه چشم ها به سراب های که افسارش در دست مرد روستایی بود و به طرف جایگاه امیر پیش میرفت دوخته شد. مرد روستایی به نزدیک امیر که رسید اجازه خواست و امیر هم با دست اشاره کرد و او در یک لحظه با چالاکی روی اسب پرید و با پاشنه پاهای در رکابش به شکم اسب کوبی جمعیت دو طرف میدون ایستاده بود یک طرف میدون هم جایگاه امیر و پیشکار و سران لشکر بود و طرف دیگه اون که از اونجا راهی به بیرون شهر میرفت خلوت و خالی بود مرد ابتدا خیلی ملایم و یواش اسب رو به حرکت در آورد ولی بعد آروم آروم سرعتش رو بیشتر کرد امیر و فرماندهان لشکر یک لحظه هم نگاهشون را از اسب بر نمی‌داشتند مرد روستایی به یکی از فرماندهان لشکر نزدیک شد و کلاه او را از سرش برداشت بعد با رکاب به شکم اسب کوبید و لگام حیوان رو شل کرد و با چنان سرعتی شروع تاختن کرد که در چشم برهم زدنی به آخر جمعیت رسید و از میدون بزرگ بیرون رفت و روونه خارج شهر شد دقایقی طول کشید تا امیر و اطرافیانش به خودشون اومدن و فهمیدن که چه اتفاقی افتاده فرماندهی که مرد روستایی کلاه رو از سرش برداشته بود از خجالت نشسته بود رو زمین و سرش رو میون دستاش گرفته بود امیر این صحنه ها رو دید در حالی که چشماش از زور ناراحتی به خون نشسته بود فریاد کشید بگیرید این مرد رو هزار درهم به اون کسی میدم که این مرد رو بگیره و به اینجا بیاره همه هزار سپاهی امیر دهنه ی رو کشیدن و جمعیت پراکنده شدن و اونها با تمام توانشون به طرف خارج شهر شروع به تاختن کردند. همین در حالی که از این نظر خوشحال بود که بالاخره حرفش رو به پیشکار ثابت کرده و برای همیشه از دست نصیحت های بی جای او راحت شده دستش رو به شونه پیشکار زد و گفت دیدی پیشکار اینجا دیگه آخر قصه است بالاخره قبول کردی که این جور ها شایسته یه هیچ اعتمادی نیستن بیشکار که با دیدن اون اوزا و احوال حال خوشی نداشت سکوت کرده بود و سرش سرشو پایین انداخته بود اما از اون طرف بشنوید که مرد روستایی با اسبی که خودش اون رو تربیت کرده بود راه بیابون رو در پیش گرفته بود و چنان میتاخت که با تم به گرد پاش نمیرسید هزار سپاهی امیر هم بیابون رو زیر سم اسب‌هاشون میکوبیدن و تا اون جایی که میتونستن به عصب ها فشار میآوردن اما اونها کجا و مرد روستایی و اسبش کجا اونها هرچه بیشتر میتاختن کمتر نتیجه میگرفتن این گذشت تا اینکه شب فرا رسید و مرد روستایی همراه با اسبش در تاریکی شب گم شدن و هزار سپاهی امیر ناامید و دست از پا به شهر برگشتن القصه روزها همینطور در شادی امیر و سکوت پیشکارش میگذشت تا اینکه یه روز نامه ای به بارگاه رسید این نامه از مرد روستایی بود پیشکار نامه رو در مقابل خود امیر باز کرد و شروع به خوندن اون کرد مرد روستایی نوشته بود ای امیر من به اون نیت این کار رو کردم تا سپاهیانت با همه جد و جهد و توانشون بتازن و هر کاری که میتونن برای گرفتن من انجام بدن اما دیدید که هیچ کس نتونست حتی به گرد پای این اسب هم برسه دیدید که اسب هایی که سپاهیان شما نگهداری میکردن به بارکش ها بیشتر شبیه بودن تا اسب ای امیر حالا که توانایی و دانش من در اسب شناسی برای شما ثابت شده اگه شایسته خدمت به بارگاه شما هستم اما نامه و انگشتری خودتون رو بفرستید تا برگردم اگر نه من اسب و کلاه فرمانده لشکر شما رو میفرستم و به دنبال کار دیگه میرم پیشکار نامه رو بست و نگاهش رو به امیر دو امیر که از اون همه ذکاوت و دانش مرد روستایی شگفت زده شده بود سکوت اختیار کرده بود و چیزی نمیگفت او دقایقی که فکر کرد بالاخره به حرف اومد و نگاهی به پیشکارش کرد و گفت راست گفتی پیشکار هرکس به اندازه خودش اندوخته از دانش داره درسته همه چیز رو همگان دانند و بعد اما نامه‌ای برای مرد روستایی فرستاد و او رو دعوت کرد تا به بارگاه بیاد و پرورش از پاش رو برقوده بگیرد.